فاطمه و نن خانوم الم را از تاریکی نجات میدادند. های بیل لباس سیاه پوشیده جمع شده بودند جلو در سنگی علمخانه. مشی زینال با جوب های زیر وغریش نشسته بود روی تل خاک و با صدای بلند قرآن میخواند. نن خانوم فانوس را گذاشته بود توی علمخانه و با فاطمه دو نفری علمها را به دوش میگرفتند. و از راهرو تاریک رد می شدند و میرسیدند جلو در. اول پنجه علم و بعد خود علم را میآوردند بیرون پیرزنهای بیل هجوم میآوردند و علمها را میگرفتند مشتی زینال با صدای بلند میگفت سلوات بر حبیب خدا زنها سلوات میفرستادند و علمها را بلند میکردند مشتی سفر که سرش را از سوراخ پشت بام آورده بود بیرون استخر را تماشا می کرد و ماه که از پارگی ابرها پیدا می شد چشم به علمها می دوخت سفر جنگل علمها را تماشا می کرد. اسلام و عبدالله و پسر مشتی سفر کنار استخر با گاری ور اسلام گفت شرخهایی بی نداره میتونیم تا خاتون آباد بریم عبدالله گفت بسطه راه نمونیم اسلام گفت من با این چهار شرخ خاتون آباد و عزبان و جامیشان و حسن آباد را زیر پا گذاشتم و طوری نشده عبدالله گفت انشالله که این دفعه هم طوری نمیشه اسلام گفت اسب باید سالم باشه گاری هر جوری شده راه میره عبدالله گفت کد خدام همیشه اینو میگه اسلام به کیسه ها نگاه کرد و گفت: «این همه کیسه را می چه کار؟ پسر مشی سفر گفت: هر خانه یه تومن پول داده و دو تا کیسه اسلام گفت: «مگه تو خاتون آباد این همه سیب زمینی پیدا میشه." پسر مشی سفر گفت عمله گیر بردن. اسلام گفت: «مثل اینکه دلخوری اگه نمیخوای میتونی نیای؟ پسر مشری سفر خندید و روی گونیها دراز شد و گفت اگه دلم میخواست که میام و اگه نخواست نمیام اسلام رفت زیر گاری تناپا را نگاه کرد و آمد بیرون و به عبدالله گفت اگه کت خدا بیاد راه میفتیم پسر مشری سفر که به ماه و پارگی ابرها نگاه میکرد گفت مشری اسلام میدونی که مشری جبار و پسر نن فاطمه رفتن پروست دزدی؟ اسلام گفت به من چه؟ به تو چه؟ به ما چه؟ پسر مشتی سفر گفت خودم دیدمشان. اسلام که با مالبندها ورمی رفت گفت بی خود دیدی. پسر مشتی سفر چیزی نگفت. اسلام و عبدالله هم چیزی نگفتند. باد تون شده بود. صدای گاوه مشتی از دور می و صدای سگ قریبهی که زوز کشان به بیل نزدیک می شود. مشریجببار و حسنی که وارد بیل شدند شب از نصفه گذشته بود. اطراف استخر را علم زده بودند و کسی بیرون نبود. دو تا بچه زیر علمی نشسته بودند و شله گندم میخوردند. حسنی و مشتی جبار که توی کوچه پیچیدند صدای خرپوفانهایی را که خواب بودند شنیدند. پشت یکی از بام ها نن فاطمه و نن خانوم ایستاده بودند و هر کدام علم خیلی بزرگی به دست داشتند. مشری جبار گفت دارم از زور خستگی میافتم. حسنی گفت کم منده آفتاب بزنه. مشری جبار دهندره کرد و گفت چهار فرسخ را رفتیم با دوتون مرغ برگشتیم. حسنی گفت میتونیم اشکنه و شله گندم بخوریم. به خانه مشتی جبار رسیدند. در را هل دادند. مشتی ریحان که پشت در خوابیده بود، صدای در را شنید و بلند شد و خود را کنار کشید. اول مشتی جبار و بعد حسنی با زنبیل وارد شدند. بوی اشکنه مرغ مطبخ را پر کرده بود. مشتی جبار گفت: "دارم از خستگی میافتم." مشتی ریحانه گفت: "بیا بگیر بخواب." مشی جبار جلو رفت. لحاف و متکایش را دید که جلوی ها بند شده. کلاهش را برداشت و دراز کشید. مطبخ گرم بود. صدای اشکنه که توی تنور میجوشید بلند بود. پلکایش را به هم زد. پاپاخ با صورت پشمالود آنور درب چه نشسته بود و تاریکی مطبخ را نگاه میکرد. مشی جبار گفت: حسنی مرگ چاغ رو خودت نبریا. حسنی گفت من نمیخوام هر دو را میدم به تو مشتی جبار گفت بده به مشتی ریحان اگه خواستی فردا بیا و عشقه نشو بخور حسنی زنبیل را داد دست مشتی ریحان و مشتی ریحان زنبیل را گذاشت روی هیزوم ها. حسنی آهسته به مشتی ریحان گفت من میرم خونمون مشتی ریحان گفت برات جا درست کردم اومریزم‌ها حسنی گفت اگه مشتی جبار بدونه اوقاتش تلخ میشه مشتی ریحان گفت خوابش سنگینه تا صلات ظهر بیدار نمیشه خورناس مسجد بلند شد و بدون دنبال آن صدای عدی از کنار استخر که نوهه می‌خواندند و گریه میکردند. حسنی گفت بخوابم اینجا مشتی ریحان گفت برات اشکنه درست کردم میارم که بخوری هر دو رفتن آنوره هیزمها که محووته کوچکی بود با دربچهی که به کوچه باز میشد از آنجا آسمان و بامهای بلند بیل دیده میشد حسنی نشست روی لحاف و به ماه که از پارگی ابرها بیرون آمده بود نگاه کرد و گفت تکون نمیخوره هرچین نگاش میکنم تکون نمیخوره صدای بادیه و غاشخ شنیده شد بوی اشکنه تمام مطبخ را پر کرد. حسنی با خود گفت: گرسنامه خیلی گرسنمه صدای قدمها و گریا ها از بیرون شنیده شد. حسنی به کوچه نگاه کرد. از پشت دربچه علم می بردند. پنجه های بزرگ مسی با انگشتان باز به آسمان اشاره میکردند. صدای مادرش را شنید که بلند بلند میگفت، قسمت میدم یا حضرت یا علی یا محمد بیل رو نجات بده. مشتی ریحان با بادیه پر آمد و نشست کنار او. حسنی بادیه را نگاه کرد. آنچه توی بادیه بود دیده نمیشد. حسنی گفت خیلی داغه. مشتی ریحان گفت نه. و دست حسنی را گرفت و انگشتش را کرد توی اشکنه که بلرم بود. حسنی بادیه را برداشت و گفت نمی خوری؟ مشتی گفت تو بخور منم می خورم حسنی بادیه را سر کشید اشکنه شور و چرب بود بوی گندم و بوی چاه میداد. داد مشتی گفت خوشت اومد حسنی با سر اشاره کرد و بادیه را داد به مشتی ریحان مشتی ریحان بادیه را گرفت و یک دو جرعه خرد و دوباره رد کرد به حسنی حسنی اشکنه را تمام کرد و بادیه را گذاشت زمین مشتی گفت شله می خوری؟ حسنی گفت نه دیگه، هیچی نمیخورم. خورم مشتی بلند شد و بادیه را برداشت و گفت حالا دراز بکش دستش را گذاشت روی سینه حسنی و خواباندش. لحاف نرم بود و هیزمها بوی نان برشته می دادند حسنی دراز شد مشتی بادیه را برداشت و رفت آن طرف ایزمها حسنی غلط زد و ایزمها را نگاه کرد و یک مرتبه چشمش افتاد به صدها چشم ریز که مثل ستاره از لای ایزمها نگاهش می کردند. حسنی با خود گفت من که خوب سیر شدم شما مگه موش نبودین مشتی بهتون اشکنه میداد. و خندید و دوباره غلط زد و رو کرد به دربچه علمیان پشت ایستاده بود و پنجه بزرگش با دو انگشت دراز به آسمان اشاره می کرد. حسنی گفت یا حضرت یا محمد یا علی پنجه دور شد حسنی خود را جابجا به جا کرد و نفس کشید و چشمهایش را بست مشتی ریحان روی پنجه پا نزدیک شد و رفت زیر لحاف حسنی مشتی جببار توی خواب های های گریه می کرد. <تصفيق> از سید هزوان، ملکزاده ملکزاده، جامیشان، میشو، ردیف گاری ها به طرف خاتون آباد را افتاده بود. از هر گوشه بیابان، ستها اسب خسته، گاری ها و مردان گرسنه را له لح زنان، به طرف خاتون آباد می بردند. خاتون آباد بیدار بود مشتی نایت کت خدا تمام خانه ها را می گشت و سر می کشید خاتون ها با عجله زمینی ها را می توی کیسه ها و کیسه ها را ول می کردند توی چه ها. صدای چرخ هایی که تون تون می چرخیدند. صدای نفس نفس گرسنهایی که به خاتون آباد نزدیک می شدند. و صدای زنگوله هایی که تهدیدکنان دور آبادی چرخ میزدند. زدند مشی جبار خواب میدید دید که در پروس توی چاه بزرگی پایین می رود تنابی به کمرش بسته بودند اما کسی بالای چاه نبود که تناب را بگیرد تناب از پارگی ابرها آمده بود او از ماه آفیزان بود. ته که رسید، بوی بیل را شنید، بوی گوسپنده‌هایش را که پروسی ها از بیل برده بودند. چشمایش که به تاریکی عادت کرد، جلوتر رفت. اما سه پروسی با غمه های لخت جلوش را گرفتند. پشت سر آنها ردیف گوسپنده‌ها و مرغها منتظر ایستاده بودند. پروسی اول گفت: کجا؟ پروسی دوم غمش را تکان داد و گفت کجا؟ پروسی سوم گفت تو سر تو می بریم، سر تو. جبار با صدای گرفته گفت من من گوسفندام می خوام. پروسی ها سه طرفش را گرفتند و گفتند مرغا رو می خاییم، رو. جبار گفت گوسفندامو گوسفندامو روسی‌ها حمله کردند و غمه ها را بردند بالا و گفتند سرتو میبریم می‌بریم سرت مشتی جبار با وحشت فریاد زد بکش بالا بکش بالا از خواب پرید عرق سردی به تنش نشسته بود از کوچه عقبی دسته ی عزاداران می‌گذشت مشتی جبار صدای اسلام را شنید که بلند بلند گریه می کرد و میخواند. سر حسین تشن لب به خاک کربلا ببین و بیلی خفه و آرام تکرار می کردند. تن حسین تشن لب به خاک کربلا ببین مشتی جبار نیم شد و به دربچه خالی نگاه کرد بعد آمد کنار ایزم ها دربچه کوچه را نگاه کرد پنجه های مسی و انگوشت های باز از هم یکی بعد از دیگری رد می شدند مشی جبار جلو آمد پنجه یه بزرگی با دو انگشت بلند آمد و ایستاد جلو دربچه. صدای ننه خانوم از توی کوچه شنیده شد که زاری میکرد یا حضرت دخیلتم بلا را از جان بیل دور کن یا امام دخیلتم یا نبی دخیلتم پنجه که دور شد صداها برید مشری جبار که خواست برگردد حسنی را دید که افتاده و خابیده و مشتی ریحان کنارش دراز کشیده دستهایش را مثل پنجه های مسیح در دو طرف گردن حسنی گذاشته است. مشتی جبار با عجله رفت آن و ریزمها و فانوس را آورد و خم شد. نور که به صورت حسنی و مشتی ریحان افتاد هر دو یک دفعه چشمها را باز کردند. مشتی جبار فانوس را محکم به زمین زد و نعره کشید آهای آهای دوید بیرون و در را از آن طرف چفت کرد حسنی و مشتی ریحان بلند شدند حسنی گفت دیدی چی شد مشتی ریحان گفت بیا بیا در بریم بیا در بریم حسنی و مشتی ریحان به طرف در رفتند در از بیرون بسته بود صدای مشتی جبار از بیرون شنیده میشد که دور خانه میدوید و فریاد میکشید آهای، آهای، آهای حسنی گفت، میشنوی؟ مشتی ریحان گفت، داره میدوه حسنی گفت، کجا؟ مشتی ریحان دستهایش را باز کرد و گفت همین جوری دور خانه حسنی گفت، چه کار بکنیم؟ چه کار بکنیم؟ دوباره آمدند پشت ایزام ها و کوچه را نگاه کردند پنجه مسی بزرگ با دو انگشت دراز آمده پشت دربچه ایستاده بود توی کوچه کسی سرفه می کرد مشتی جببار دور خانه میدوید و فریاد می کشید آی آهای،, آهای،, آهای از کنار استخر صدای عزاداران شنیده می شد که ناله می کردند سر حسین لب به خاک کربلا ببین تنه حسین لب به خاک کربلا ببین مشتی ریحان گفت بیا زودتر بیا حسنی رفت مشتی ریحان تخت سنگی را که کنار تنور بود بلند کرد، پله های تاریکی پیدا شد، اول خودش و بعد حسنی رفتند توی تاریکی، و وقتی توی کوچه آمدند، مشتی جبار کنار آنها ایستاده بود و فریاد می کشید، آهای، آهای، آهای، حسنی و مشتی ریحان سر جایشان خشک شدند، طرف دیگر مشتی جبار عباس پیدا شد که پنجه علمی به دست داشت مشی جبار برگشت و خود را که بین سه نفر دید عقب عقب رفت و با وحشت فریاد زد گوسفندمو! از عزاداران از کنار استخر خواندند سر شهید تشنه تن شهید تشنه و باس گریه کرد و گفت سر حسین تن حسین به شور که رسیدند پسر مشتی سفر از گاری پرید پایین و گفت من دیگه نمیام تناب کلوفتی را که به دست داشت پیچید دور کمر و زنبیلش را انداخت روی بازو و از بیراهه زد به پروس اسلام و عبدالله مدتی نگاهش کردند و بعد گاری را هی کردند طرف خاتون آباد صحرا سوراخ سوراخ بود و توی هر سوراخ کله موشی پیدا بود که با چشمان ریز و منتظر بیرون را نگاه می کردند سایه گاری را که می دیدند می پایین و دوباره می بالا اسلام و عبدالله که به خاتون آباد رسیدند از زیادی گاری مات و مبهوت شدند توی ده و بیرون ده گاری ها گوش تا گوش ایستاده بودند و مردها روی تلی از گیزه در گاری ها نشسته بودند مشتی نایت؟ از بین گاری ها و با صدای بلند میگفت به خدا چی نمونده، هیچی چی نداریم اسلام را که دید به طرفش آمد و گفت تو سیب زمینی مشتی اسلام؟ اسلام گفت، هاره مشتی انایت وضع ویل و, و جوری است مشتی انایت گاری ها را نشان داد و گفت می بینی که؟ اسلام گفت، چه کار کنم؟ مشتی انایت گفت، برین یه گوشه منتظر بشین؟ شاید چیزی براتون پیدا کردم اسلام سر عصب را برگرداند، آمدند کنار جاده و ایستادند عبدالله دستمالش را باز کرد و شله گندم را درآورد که بخورند از توی گودال کنارگاری دست بزرگی گدای خاتون آبادی آمد بیرون و پند شد جلوی عبدالله و اسلام عبدالله رویش را گرفت طرف دیگر اسلام یک مشت شله گذاشت کف دست گدا، دست که رفت توی گودال، چند تا موش آمدند بیرون. مشتی ریحان و حسنی توی شهر میگشتن بوی نان برشته همه جا پیچیده بود. هر دو سیر بودند و با بغلی از نان خانه ها را تماشا می کردند. آفتاب که کچ شد، هر دو رفتند توی خرابهی و نشستند کنار گودالی. حسنی گفت، هوای شهر چقدر گرمه. مشتی ریحان که دستش را روی ران حسنی میکشید گفت: و چه نونهای خوشمزهی پیدا کردیم. گاری اسلام در بیراهه ایستاده بود، با پنجاه ها و علمهایی که دور گاری زده بودند. اسلام، کت خدا، مشتی بابا، عبدالله، مشتسن، توی تاریکی، دره را می‌گشتند زیدا توی خواب بود و یلیها دنبال لاشه علاق آمده بودند توی هر دره چند لاشه بود اما آنها لاشه تازه میخواستند که پیدا کردند و توی زنبیل بزرگی جا دادند و پنج نفری کشان کشان از توی دره بیرونش آوردند سوار گاری که شدند لاشه را در میان گرفته بودند چشمهای چروکیده علاق باز بود و به ماه که از پارگی ابرها میتابید نگاه می‌کرد. موشها ریخته بودند بیرون و تمام بیابان را پر کرده بودند. چرخهای گاری که از رویشان جان می جیغ می‌کشیدند. مشتی بابا، صدای شکستن هاشان را میشنید. بیل از دور پیدا شد با شامها و آتشی که در نبی‌آقا روشن کرده بودند. که خدا گفت، خدا نصیب کافر هم نکنه. اسلام گفت، نصیب ما که کرده؟ مشتی گفت، اگه یه وقل یونجه ویدا کرده بودیم، گاو من. عبدالله گفت، بازم جای شکرش باقیه که دست خالی برنگشتیم. مشتی بابا گفت، خدایا به دادت شکر، به ندادت شکر. به ده که رسیدند، و یلیها سین زنان، با علمهای بزرگ بیرون آمدند همگی نوهه می و گریه می کردند. جلوتر از همه نن فاطمه و نن خانم بودند که با قد خمیده زنجیر بگردند نفری دوتا علم بزرگ به دوش کشیده بودند نن فاطمه روزه میخواند. سر شهید کربلا تنه شهید کربلا و جمعیت گرسنه فریاد میزدند. سر شهید لب نلب، تنه شهیدتش نلب اسلام که جماعت را دید، دستهایش را گرفت جلوی صورت و حق حق به گریه افتاد جماعت دورگاری حلقه زدند و با اشتها چشم دوختند به لاشه بزرگ و مرتوب الاق و ساکت شدند نصفه شب تازه گذشته بود صدای غریبه از دور از آن می و سگهای بیل یک بند زوزه میکشیدند